فصل دهم ده زود بود بخوابم دقیق یادم نیست ساعت چند بود ولی میدونم همچین دیرم نبود متنفر بودم از اینکه وقتی خوابم نمیاد برم بخوابم از تو چودون یه لباس تمیز برداشتم و رفتم دوش گرفتم به خودم گفتم میرم پایین و یه سریم به سالن نرگس میزنم هتل باشگاه شبونهای داره که بهش میگن سالن نرگس تا دا داشتم لباس عوظ میکردم نزدیک بود به خواهرکوچیکم فیبی زنگ بزنم خیلی دلم میخواست با صحبت کنم با کسی که حرف آدمو بفهمه ولی نمیتونستم ریس کنم و بهش زنگ بزنم کوچیک بود و بعد زود میخوابید و مطمئن بودم که دور بر تلفن نیست با خودم گفتم اگه مامان بابا برداشتن قطع میکنم ولی خب میفهمیدم منم مامانم همیشه میفهمه که منم خیلی تیزه ولی خیلی دلم میخواست با فیبی صحبتکی کنم باید خواهرم رو ببینی ببین به عمرت بچه از این ناستر رو باهوشتر نیدی خیلی باهوشه همه این بیسته راستش تنها خنگ خانواد منم برادرم دیبی هم که نویسند و از این حرفاست برادرم الکه فت شدم که باید گفتم که چه اوجوبه ای بود فقط من خنگم حالا باید فیبی رو ببینی مو قرمزه کمی شبیه اله همیشه تابستون موهاش کوتاه و جمعش میکنه پشت گوشه کوچولوی نازش زمستونا ولی مو بلنده گایم همونام موهاشو میبافه و گایم نه خیلی بهش میاد ده سالش بیشتر نیست عین خودم لاغره ولی نه لاغره زشتا لاغری بهش میاد یادم یه روز از خیابون پنجم رد میشد بره پارک و من از پنجره نگاش میکردم به خودم گفتم لاغری عجب بهش میاد ازش خوشت میاد کافیه باش حرف بزنی زودی میگیری داری چی میگه و منظور چیه هر جا دوست داشته باشی میتونی ببریش مثلا اگه ببریش تماشه فیلم بیمزهی در جا میفهمه فیلم است. ببریش تماشای فیلم خوب در میفهمه فیلم خوبه یه بار منو دیوی بردیمش تماشه یه فیلم فرانسوی اسم فیلم زن ناموا بود آره خیلی کیف کرد فیلم مورد علاقش سی و نه پلهی بود همونی که رابرت دونات توش بازی میکنه فیلم از بره ده بار دیدتش مثلا جایی که دونات از دست پلیسا فرار میکنه و پاش میرسه به اون مزرع اسکاتلندی فیبی تا قیافه یارو اسکاتلندی هر می‌بینه میبینه زودی دیالوگش از حفظ میگه شاه ماهی میخوری؟ <تصفيق> اونجایی که اون یارو پرفسره همونی که بعداً معلوم میشه جاسوس نازیاست انگش کوچیکش شدهش شدهشو بالا میاره تا به رابرت نشون بده فیبی عینشو تکرار میکنه و رو تو تاریکی سینما میگیره جلو فیبی خیلی باحاله مطمئنم ازش خوشت میاد تنها مشکلش اینه که گاهی زیادی مهربون میشه خیلی احساساتیه نسبت به سنش خیلی بیشتر احساساتی میشه خیلی تازه رمانم می نویسه رمانایی که تمامشون نمیکنه رمانایی که همشون درباره دختری به نام هیزل ودرفیلد البته فیبی اسم شخصیتشو هیزل می نویسه کارگاه هیزل ودرفیلد مثلا توی داستان یتیمه ولی پدرشو رو هر از گاهی می بینیم پدرشو مرد محترم قد بلند خوشتیپبی ساله ای توصیف میکنه فوق العاد است فیبیو خیلی دوست دارم از همون بچگی باهوش بود وقتی کوچیک بود با منو عمی اومد پارک مخصوصا یک شنبا. علی قایق بادبانی داشت که دوستش داشت یکشنبه سوارشه فیبی هم با خودمون میبردیم دستکشای سفید دستش میکرد و عین دخترای جوون وسطمون راه میرفت. وقتی هم منو الداشم صحبت میکردیم دقیق گوش میداد. و وقتا فراموش میکردیم مثلا بچی گوچی که هم ولی همیشه یه ما میداخت هر بار که میپرید وسط حرف اون یاد میافتاد که اونم هست مثلا میپرسید داریم از کی حرف میزنیم داریم چی میگیم و دقیقاً با کی هستیم بعد ما هم برش دوزی میدادیم و اونم بقیش گوش میداد الان خیلی فیوی و دوست داشت الان ده سالش دیگه ریزه میزه نیست ولی ه آدم نهیدم دوستش ننشته باشه بیخیال فیبی از اوناست که دوست داری پای تلفن مدام باش حرف بزنی ولی میترسیدم مامان بابا گوشیو بردارن اون وقت میفهمیدن نیویورکم و از پنسی اخراج شدم لباس پوشیدم و با آسانسور رفتم ببینم توی لابی چه خبره جز چند تا پا و چند تا موبور خراب کسی تو لابی نبود وقتی صدای گروه از سالن شنیدم رفتم اونجا خیلی شلوغ نبود ولی جای بعدی گیرم اومد یه جایی ته ته سالن حالا این بود که یه رشوهی چیزی میدادن به سرما سخت من رسد جدی جدی تو نیویورک حرف اول آخر پول میزنه و بس گروه موزیکش افتضاح بود بادی دی سینگر هم بود خوندنش که حسابی خالطور بود نه خالطور خوبا خالطور زایه تعداد همسن و منم خیلی کم بود، تقریبا غیر از خودم کسی اونجا نبود که همسنم هم باشه. همه از این پیر بودن از این مدل آدمایی تووییتترین که با دوستاششون اومده بودن بیرون. فقط میز سمت راستم بدک نبود. اونجا سه تا دختر تقریبا سی ساله نشسته بودن. هر سهشون زش بودن و از کلاهای سرشون تابلو بود که اهل نیویورک نیستن. فقط یه موبور بینشون بود که بدک نبود آره؟ موره خوب بود سعی کردم باهاش چشم تو چشم ولی یهو یه پیش خدمت از راه رسید که سفارش بگیره چیز سنگینی سفارش نهدم توندی سفارش دادم که زودتر گورشو گم کنه جایی واسه تت پته نبود بود اگه لفتش می دادم ممکن بود بفهم زیر 21 سال اما خوب دیگه اما کلکم نگرفت ببخش قربان شما کارت شناسایی همراتون هست گواینامه چیزی یخ نگاش کردم که مثلا به چه جرعت همچین حرفی زده من شبیه آدمای زیر بیست و یک ساله جسارت نباشه قربان ولی مو محضوریت باشه باشه رو نداشتم برام نوشابه بیارین داش میرفت صداش کردم ببخشین میتونین بیزه توش یکم قاطی کنین؟ خیلی عرف محترمونه بود نمیتونم جایی خونکی مثل اینجا بشینم و گرمم نشه ممکنه کاری کنین یکم گرمم کنه گفت خیلی آز میخوام زودی جیم شد به دل نگرفتم خب اگه لومی رفتم به کسی میفروشن که زیر سن قانونیه اخراجشو میکردن منم که زیر سن قانونیم دوباره نگامو دادم به اون سه تا عجوزه میز کنری به اون موبوره اون دوتای دیگه که هیچی شوت بودن اگه بخوام بد جنسی کنم و به هر ستاشون نگاه کردم تا نگاه دیدن عین احمقا ریز خندیدن لابد با خودشون گفتن که من بچه تر از این هم. همه خیلی حالم رو می گرفت ندونه انگار می خواستم با باشون کنم باید با همین ایک بری بازی که دروردن بیخیالشون می شدم ولی نشدم چون خیلی حوث کرده بودم خیلی وقتا حواس میکنم و این بارم از اون وقتا بود یهو خم شدم گفتم کدوم یکی از شما خانومه افتخار میده اینو خیلی معدبانه پرسیدن با ادب و مهربون ولی مثل اینکه اینو بعد گرفتن و ترسیدن بعدش باز دوباره ریز خندیدن باور کن با ست ابله طرف بودم گفتم بیاین دیگه نوبت به نوبت باشه قبوله ها خیلی دلم بخواست بالاخره همون مور پا شد اصلا اون اولش هم خودش بود با هم رفتیم وسط سالن تا پا شد اون دوتا مشنگ نزدیک بود قش کنن گمونم خیلی تابلو بود ازشون خوشم نیود و حال نکردم. ولی میرسید موبور کار بلد بود یکی از بهترینایی بود که تا حالا دیده بودم. شوخی نمیکنم بعضی از این دخترای احمق ممکنه در جو همون وسط سالم بزنن ناکارت کنن باید با رو انتخاب کنی اون وقت میبینی که خودش داره راه و چاه و نشونت میده وگرنه کارت زاره اون وقت که میتونی بکنی اینه که بری پشت میز بشینی و براش زهرماری سفارش بدی و بیخیال وقتی این ماجرشی ببوره گفتم <تصفيق> خیلی کارت درسته میخوام آدم هرفهی باشی جدی میگم پیش اومده با رقاسه باشم ولی به پای نمی‌رسید. نمیرسید اسم مارکو میراندا رو شنیدی چی حواسش جمع نبود مدام سرش بید. گفتم تا حالا اسم مارکو میراندا به گوشت خورده نه نشنیدم نه نمیدونم اینا یه تیمن سرپرستشون هم میرانداس ولی خودش همچین خوب نیست خودشو جر میده تا اونی بشه که میخواد ولی نمیتونه میدونی که یکی میتونه رقاس خوبی بشه؟ چی میگی تو؟ اصلا گوش نمیداد مدام حوزش این اینورم بر بود گفتم میدونی که یکی میتونه رقاس خوبی بشه؟ آهان خب وقتی دستم رو بردم عقب تو احساس کردم چیزی زیر دستم نبود هیچی نه پایی نه دستی هیچی اون وقت تو یه رقباس درسته حسابی گوش نمیداد چی میگم منم دیگه محلش نهدم فقط با هم وسط سالم بودیم باید میدیدی همین دختر خنگ چقدر خوب بود بابی سینگر و گروه افتضایش داشتن آهنگ فقط یکی از همونا را اجرا میکردن آهنگ که اجرای زایشون هم نمیتونست درجه یک بودن این آهنگ از بین ببره آهنگ محشریه او مسطم سعی نکردم زرنگ بزی در بیارم خالم از این آدمایی که وقتی با یکی وسطن مدام سعی میکنن عداعتفاره حالا که در به هم میخوره فقط زیاد حرکت میکردم و اونم همراه میومد خنددارش اینجا بود که خیال میکردم خوشش میاد اما یه, یه حرفی زد که شکم کرد من و دوستام دیشب پیتلوریو دیدیم بازیگر سینما از نزدیک دیدمش داشت روزنامه میخرید خیلی نازه <تصفح> چقدر شانسی تو میدونستی خیلی خوششانسی پسر طرف تعطیل بود ولی رقصش حرف نداشت نتونستم جلوی خودم و بگیرم و نزدیک سرش شدم نزدیک فرق سرش تا نزدیک شدم عقب کشید که داری چی کار ای داری چیکار میکنی چی چیکاری نمیکنم هستیم دیگه یه خواهرکوچولو دارم کلاس چهارمه تو خیلی منو یاد اون میندازی اون بهترین رقاصیه که تاحاله دیدم میشه موازه به حرف زدنت باشی؟ حالا خانم متشخص شده بود پرسیدم شما بچه کجایین؟ باز جواب نداد یمونم مدام داشت سر میگردوند ببینه پیتلوری کجاست دوباره پرسیدم ها؟ بچه کجایین؟ چی؟ میگم شما بچه کجایین؟ اگه نمیخوای جواب بدی نده نمیخوام زوری ازت حرف بکشم سیاتل واشنگتن. همچین گفت انگاری چه لطف بزرگی در حقم کرده آدم چقدر راحت میتونه با حرف بزنه کسی تالا بهت گفته هم صحبت خوبی هستی؟ چی؟ پیشو نگرفتم بعد بیخیالش میشدم اگه یه آهنگ تند گذاشتن دوست داری جیترباگ بزنیم؟ نه از این جیتر باگی علکه که مدام شلنگ تخته میندازن یه دونه درست حسابی شو. وقتی آهنگ تند میکنن همه جز آدم و چاقه کنار میکشن. کلی جا داریم و وقتها. جا داشتن نداشتن فرقی نمیکنه. هی hey, راستی چند سالته؟ حرفش حسیت هم کرد. اه ah, بی خیال دیگه دوازده سالمه هی hey, کلم غلط اندازه. ببین بهت گفتم که دوست ندارم اینطوری حرف بزنی. اگه میخوای اینطوری حرف بزنی میرم دوست دوستان میشینم و. این دیوونو ازش رو کردم چون اونا زربا و بالا برده بودن و منم بیشتر جفگیر شده بودم شروع کردیم به جیترباگ خیلی راحت و ساده دختر خوبی بود فقط کافی بود از نزدیک حسش کنی وقتی میچرخید که دیگه نگو نپرس هوش از سرم پرونده بود جدی میگم وقتی نشستیم نصف نیمه عاشقش بودم دختر همینن دیگه مهم نیست قیافشون چطوره یا حتی عقلشون میرسه یا نه چون هر بار که کار خوبی میکنن نصف نیمه عاشقشون میشی و اون وقت حسابی گیج میزنی دخترا وای خدای من دختران راحت میتونن دیوونت کنن خیلی راحت دعوتم نکردم پشت میزشون بشینم بیشوری شاه نداره که ولی مهم نبود رفتم نشستم دختر بوره اسمش برنیس بود فامیلیشم کربز یا کربز بود دقیق یادم نیست اسم اون دو تا دوست زشتشم مارلی و لاورنس بود علیکی منم گفتم اسمم استیله اینجوری خال میکردم بعدش سعی کردم کمی باهاشون حرف متشخصانه درست حسابی بزنم <تصفح> نه پسر این کاره نبودن مخشون نمیکشید انتخاب احمق ترینشون هم کار سختی بود مدامه سرگوششون می جنبید انگاری منتظر بودن یهوی هایی بازیگر سینما بریزه این تو لابود خیال میکردن کردن سینما پاتوقشون به جای کلوپ استروک یا المروکاین خراب شده است و هر بار که می اومدن نیویورک منتظر بودن یکشون اینجا ببینن نیم ساعتی طول کشید تا بفهمم تو سیاتل چه قلطی میکنن هر ستاشون تو دفتر بیمه کار میکردن. ازشون پرسیدم که از کارشون راضی هستن یا نه ولی مگه میشد از این سه تا خیم جواب درسته سبی گرفت می کردم اون دو تا زشته خواهرن وقتی اینو گفتم هر دوشون زورشون گرفت نکبتا نمیشد از هم تشخیصشون داد ولی دوست نداشتن شبیه هم باشن همینش جالب بود با همشون رفتم وسط سالن یعنی با هر البته نوبتی یکی از اون بیریختا لاورنس خیلی کارش بد نبود ولی اون یکی مارتی شوت بود پسر انگاری داشتی مجسمه آزادی و با خودت میکشیده این طرف اون طرف دیدم همچین خشک خالی هم نمیشه کشیدش این طرف اون طرف برای همین علایه که گفتم گریکوپر اون طرف سالن دیدم زغمرک پرسید کوه کوشش آخ ندیدیش رفت چرا وقتی گفتم نگاه کن نگاه نکردی یه ها وایستا چشم گردون دور تا در اتاق ای خدا دلش شکست دلشو شکستم خیلی ناراحت شدم شوخی با بعضی حتی اگه حق قموش عذابم میده و این بود که وقتی برگشتیم سر میز به دوتای دیگه گفت گری کوپر این اطراف بوده تا شنیدن نزدیک بود خودکشی کنن به حیجان افتادن و ازش پرسیدن که دیدیش یا نه مارتی گفت فقط چشمم بهش افتاد آخ پسر میخواستم خودم جر بدم قبل از اینکه تعطیل کنن دو تا دیرنگ سفارش دادم و برای خودمم دو تا نوشابه گرفتم میزپر لیوان شده بود یکی از زشتا چون نوشابه میخوردم مدام مسخرم میکرد شوخی کردنش حرف نداشت ستایشون تمام وقت منتظر دیدن هنرپیشه چیزی بودن به زور حرف میزدن اصلا با هم حرف نمیزدن مارتی بیشتر از اون دوتای دیگه حرف میزد حرفای زایه و شعر رو بر. مثلا به دستشوی زنانه میگفت اتاق دختر بچه و این حرفا یا وقتی کلارینت زن پیزوری گروه فکستنی بادی سینگر پاشت سلو بزنه گفت وای چه محشره میگفت کلارینتش چوب عشقه کلن دختر زایهی بود اون یکی زشته کمی باوشتر بود مدام میگفت زنگ بزنم بابام ببینم امشب چیکار است؟ ی می میپرسید بابام دوست دختر یا نه چهار بار اینو ازم پرسید طرف حسابی شود بود موره که اصلا حرف نمیزد زد هر بار ازش چیزی میپرسیدم میگفت ها انقدر گفت ها ها اصلا خورد شد یحیی تا لیوان خالی شد ستایی از جا پا شدن و گفتن باید برن بخوابن میخواستن صبح زود برن نمایش اول وقت تالار موسیقی رادیو سیتیو ببینن سعی کردم کاری کنم بیشتر بمونم ولی قبول نکردن این شد که خدافزی کردیم و رفتن گفتم اگه پام به سیاتل باز شد سری بهشون میزنم البته فقط اگه اگه گذرم اون بری خورد و سیگار صورت حسابم یه سیزه دلاری برام آب خورد فکر کردم اینقدر شور دارن که پول میز خودشونو حساب کنم ولی نفهم تر از این حرفا بودن حتی اگه میخواستن حساب کنم من قبول نمیکردم ولی احمقای هم نزدن با اون کلاههای زایه‌ای سرشون تازه از این صبح زود بیدار شدنشون هم خیلی لجن گرفت دختری که همچین کلاه مسخری سرش بذاره و این همه راه بکوبه از سیاتل واشنگتن بیاد نیویورک و بخواد صبح زود بیدار شه که بره رادیو سیتی حسابی میرفت رو حسابم اگه اینو نمیگفتم براشون هرچی میخواستم میخریدم همین که رفتن از سالن زدم بیرون. اونجا دیگه داشت تعطیل میشد و گروه موسیقی هم خیلی وقت بود گروشو گم کرده بود. فقط خوب میدونستم اون خراب شده جز خراب شدههایی بود که فقط از سر بدبخت یا تنهایی نمیتونستی بهش پناه ببری. فقط موقعی میشد تحملش کرد که پیش خدمت بهت حال میداد و برات زهرماری چیزی می آورد. کلوبی توی دنیا وجود نداره که بتونی بدون خوردن زهرماری مالی تحملش یا این؟ یا اینکه با دختری چیزی باشی که نفهمی زمان چطوری میگذره